اینجن خودخواه نوشته ریچارد داکینز پینوشت های فصل دهم. ده تو پشتم را میخارانی من پشتت سوار میشوم توضیح درباره عبارت مندرج در صفحه 173 به نظر می رسد فقط در حشرات اجتماعی این پدیده تکامل کارگران سترون عملا رخ داده است توضیح همه این طور فکر می کردیم. ما مشکورهای بیمورا در نظر نمی گرفتیم این موشهای کور گونه ای جوانده کوچک بدون مو و تقریبا کورند که در پرگنههای بزرگ در مناطق خشک کنیا، سومالی و اتیوپی در زیر زمین زندگی میکنند به نظر میرسد واقعا معادل حشرات اجتماعی در دنیای پستانداران باشند مطالعات پیشگام جنیفر جارویس در مورد پرگنه های محبوس در دانشگاه کیپتام، اکنون با مشاهدات میدانی رابرت برت در کنیا ادامه پیدا کرده و مطالعات دیگری در آمریکا توسط ریچارد الکساندر و پول شرمن صورت گرفته است. این چهار پژوهشگر قول یک کتاب مشترک را دادند که من یکی بسیار مشتاق دیدنش هستم. در ضمن نظر من بعد مبنای چند مقالی منتشر شده و گوش دادم به سخنرانی های پژوهشی پول شرمن و رابرت برت است. همچنین این امکان را داشتم که از طریق برایان آن زمان که مدیر بخش پستانداران با وحش لندن بود از پرگنه این جانوران رو بیمو دیدن کنم. این موشای حفار در شبکه بزرگی از راهروهای زیرزمینی زندگی می کنند. هر ای معمولا شامل هفتاد یا هشتاد حیوان است، اما گاهی تعداد آنها به چند صد هم میرسد. طول شبکی راهروی زیرزمینی یک پرگنه ممکن است در مجموع به چهار تا پنج کیلومتر برسد و پرگنه ممکن است در سال سه تا چهار تن خاک بیرون بریزد. کندن نقب یک فعالیت گروهی است. یک کارگر جلودار خاک را با دندان می و آن را نقاله ای از موجودات زنده صفحه شلوغی از آن جانوران کوچک صورتی رنگ به عقب می رانند و بیرون می ریزند. بعد از مدتی کار یکی از آن کارگروه های پشتی در جای آن کارگر جلودار قرار می گیرد. در آن پرگنه طی یک دوره چند ساله فقط یک ماده زاد و ولد می کند. واقعا جارویس به جا عبارت حشرات اجتماعی را در موردشان به کار برده و آن ماده را ملکه نامیده است. آن ملکه فقط با دو یا سه نفر جفت می شود. هیچ کدام از آن نرو ماده های دیگر زاد و ولد نمی کنند و مثل بسیاری از گونه های حشرات اجتماعی اگر ملکه از آنجا برود چند ماده که قبلا عقیم بودند وارد شرایط زادآوری می شوند و سپس بر سر تصاحب جایگاه ملکه با هم موش های کارگر نام گرفته که این هم بهجاست کارگرها از هر دو جنس هستند مثل موریانها، ها ولی نمسته مورچه زنبور اصل و زنبور معمولی که کارگرها فقط مادهاند. کار هر موش کارگر به جسهش بستگی دارد کوچکترینها که جارویس همیشه کارگر مینادشان خاک را میکنند و بیرون میدهند به نوزادها غذا می دهند و احتمالا شرایطی فراهم هم میآورند که ملکه آسیده به کار زاداواری خود بپردازد او بچه بچهای نسبتاً دورشتری هم دارد که باز ما را به یاد حشرات اجتماعی میاندازد. سطروانهایی که بقیه دورشتران کاری جز خوردن و خوابیدن ندارند، ولی سطرونهای دارای اندازی متوسط، رفتارشان بینابین است. اینها مانند زنبور به صورت یک پیوستارند. مثل بسیاری از ها نیستند که به طبقات مجزا تقسیم شوند. جارویس اقیمهای دروشت را ناکارگر نامید. آیا واقعاً هیچ کاری نمی‌کنند؟ در این اینباره بر اساس کارهای آزمایشگاهی و, و مشاهدت میدانی اظهار نظر کرده اند آنها سربازم و وقتی پرگنه در خطر باشد از آن دفاع می کنند بیشتر تعمه مارها واقع می شوند. این امکان هم هست که مثل مورچه های ظرف اصل نقش منبع غذا را داشته باشند. این موشها هوموگوپرافاگووس که عبارت مودبانی است برای گفتن اینکه مدفوع یکدیگر را میخورند البته این تنها خوراکشان نیست وگرنه قوانین طبیعت را به گن میکشیدند شاید نقش مهم آن های درست این است که وقت فراوانی غذا مطبوعشان را در بدن ذخیره میکنند که هنگام کمیابی نقش گنجهٔ اضطراری نوعی کمیساریای یوبوستی را داشته باشند از نظر من حیرت آورترین ویژگی مشکورهای بیموین است که گرچه از خیلی جهات شبیه حشرات اجتماعیند، ظاهراً در آنها چیزی که معادل طبقه زادآور بالدار در مورچه و موریانه باشد وجود ندارد. البته افراد زادآور دارند، اما اینطور نیست که اینها کارشان رو با پرواز کردن و پخش کردن ژن‌هاش در در های جدید شروع کنند. همه میدانیم که شبکیه پرگنی های بیمو با کندن راهروهای جنبی زیرزمینی گسترش پیدا میکنند. ظاهرا آنها مثل تولید مثل کننده بالدار نیستند که افراد خود را در فاصله های دور پراکنده کنند. این با شم داروینی مناستم سازگاری ندارد. تاریک لازم است و حدس و گمان متوسط شوم. احساس من این است که روزی مرحله انتشار که تا کنون به دلیلی از نظر دور مانده پیدا میکنیم. نمیتوانیم بگوییم اعضای پراکنده شده واقعا بال در می آورند ولی ممکن است به چیز دیگری مجهز باشند به چیزی که بتواند با آن روی زمین زندگی کنند نزیر زمین مثلا ممکن است مو داشته باشند و لخت نباشند موشای کره حفار به روش معمول در پستانداران دیگر دمای بدن خود را نمی کنند بیشتر شبیه خزندگان خونسرد هستند شاید دما را دست جمعی کنترل کنند یک شباهت دیگر به مورچه و موریانه یا شاید از آن دمای ثابتی که در زیر زمین خوب وجود دارد استفاده می کنند. در هر حال آن افراد پراکنده شده فرزی من ممکن است اصلا بر خلاف کارگران زیر خونگرم باشند. آیا ممکن است یک جونده پرمو که از قبل می شناختیم از این به بعد گونه جداغانی به حساب آوریم و معلوم شود که همان طبقه گمشده موشهای کوره حفار هستند؟ بالاخره این چیزها بی سابقه نیست. مثلا ملخ ها معمولا زندگی تنها، مرموز و گوشگیر مانندی دارند اما ملائکه تحت شرایطی خاص به شدت به طور وحشتناک تغییر می‌کنند. وضعیت استتاری خود را از دست می‌دهند و راه راه می‌شوند. شاید این حالت نوعی هشدار است اگر چنین باشد، بدون حکمت نیست. زیرا همزمان رفتارشان هم تغییر می‌کند. از انزوا بیرون می‌آیند و دار و دسته تشکیل می دهند با عواقب خطرناک. از بلاهایی که داستانشان در انجیل آمده تا به امروز انسان از هیچ جانوری تا این حد نترسیده است. در دسته های میلیونی مسیری با پهنای ده ها کیلومتر را با هم درو می کنند و گاه روزانه تا صد کیلومتر پیش می روند روزی دو هزار تون قله را می و گرسنگی و قهدی پشت سر خود باقی می گذارن. حالا به احتمال مقایسه اینها با موش حفار می رسیم. تفاوت بین یک عضو منفرد و تجمع او در گروه آنقدر زیاد است که تفاوت بین دو طبقه از مورچه ها به علاوه درست همون داره که ما طبقه گم شده ای را برای این موش های کور فرض می کنیم تا سال 1921 ملخ جکیلیس و ملخ هاید به عنوان دو گونه مختلف طبق بندی می شد اما متاسفانه احتمال اینکه افراد متخصص در جانوران پستاندار تا امروز تا این حد اشتباه کرده باشند وجود ندارد از غذا باید بگویم مشکور معمولی تغییر نیافته، گاهی روی زمین دیده می شوند و شاید بیشتر از آنچه عموما تصور می شود از مقر خود دور می شوند. اما پیش از اینکه موضوع حدث این ز تغییریافته تغییر یافته را ترک کنیم، قیاس آنها با ملخ احتمال دیگری را به ذهن آورده است. شاید این موشهای لخت موجودات تولید مثل کن تغییر تولید می کنند اما فقط در شرایط خاص، شرایطی که در دهه‌های اخیر پیدا نشده است هنوز حجوم ملخ در آفریقا و میانه یک تهدید است درست مثل زمان انجیل اما در آمریکای شمالی اوضاع طور دیگری است در آنجا بعضی گونه‌های ملخ این قابلیت را دارند که به صورت مجتمع باشند اما ظاهراً چون شرایط مناسب دست نداده است در این قرن هیچ حجوم ملخی در آمریکای شمالی رخ نداده است هرچند یک بلای کاملا متفاوت، ها، هنوز با فصلی زمانی منظم پیدا میشوند و عجبه این که مردم عادی در آمریکا با آنها ملخ میگویند. با وجود این، اگر هجوم ملخهای واقعی در آمریکا پیش بیاید، نباید زیاد تعجب کرد. آتش فشان خاموش نشده، خیر، فعال است. اما اگر ما گزارشهای اطلاعاتی تاریخی را از جاهای دیگر دنیا ثبت نکرده بودیم، خیلی برایمان تعجب‌آور میشد زیرا تا جایی که ما میدانیم این حیوان یک جانور منزبی و بی‌آزار است شاید موش بیمو مثل ملخ آمریکایی تحت شرایط خاص شرایطی که به دلایلی در این قرن پیدا نشده طبقه جداگانی را برای انتشار خود تولید می‌کنند ممکن است در قرن 19 شرق آفریقا حجوم موشهای پرموعی را که مانند موشهای قطبی روی زمین بودند پشت سر گذاشته باشد بدون اینکه نشانی از آن برای ما به جا باشد شاید در قصه ها و افسانه‌های های دور و دراز قبایل بومی بتوان رد پای از آن ها توضیح درباره عبارت یک نازک ماده به خواهران تنی خود نزدیکی بیشتری دارد تا به بچه های خود توضیح دقت بینظیر و به فرضیه نسبت سه 4 همیلتون درباره نازک بالان شهرت نظریه کلیتر و اساسیتر او را تتوشاه قرار داده است. موضوع نسبت سه چهارم تقلاد دولاد آسان است و همه با کمی دقت آن متوجه می شوند ولی به اندازه کافی هم مشکل است که آدم از درک آن احساس رضایت نکند و نگران باشد که چطور آن را برای دیگران بازگو کند؟ اگر کسی نبا خواندن کتاب همیلتون، بلکه ضمن یک گفتگو در کافه از این موضوع باخبر شود به احتمال زیاد چیزی جز تکلا دولات در گوشش باقی نخواهد ماند این روزها مهم نیست یک کتاب زیست شناسی چقدر به اختصار به موضوع انتخاب خیشاوند پرداخته باشد در هر صورت پاراگرافی را به نسبت سه همیلتون همینلتون اختصاص داده است یکی از همکارانم هم که حالا که از کارشناسان خبره جهان در رفتار پسنداران بزرگ به شمار می آید پیش من اعتراف کرد که سالا فکر میکرد نظریه انتقاب خیشاوند فقط همان نسبت سه است و بس ماحصل همه این بحث این است که اگر واقعیت های جدید در نظر ما نسبت به اهمیت فرضی نسبت سه تردید ایجاد کند ممکن است را دلیلی علیه کل نظریه انتقاب خیشاوند به شما مثل این است که آهنگساز بزرگ یک سمفونی بلند و کاملا اصیل بنویسد و یک نوت وسط آن که کمی بالا پریده آنقدر چشم گیر که کرد از فروشی در خیابان آن را سود بزند و سمفونی را با آن نوت بشتاسند. آن وقت اگر این نوت جذابیتش را برای مردم از دست دهد مردم فکر می کنند از کل آن سمفونی بدشان می‌آید. مثلا اگر به مقاله جالبی که اخیرا در مجله نیوساینتیست از لیندا گالمین درباره موش کورهای بیمو منتشر شده توجه کنید میبینید از این نظر که موش‌های کور بیمو و موریانه را فقط به این دلیل که تکلا دولات نیستند مواردی برای رد فرضیه همیلتون دانسته از ارزش مقاله کاسته است بعید است نگارنده آن حتی آن دوتا تا مقاله کلاسیک همیلتون را دیده باشد زیرا تکلاد دولاد بودن فقط در چهار صفحه از پنجاه صفحه آن آمده است. اعتمالا بر اساس منابع دست دوم نوشته است که امیدوارم جن خودخواه جزء آنها نباشد. یک نمونه روشن دیگر به شتهای سرباز مربوط می شود که من در یادداشت فصل شکر کردم. چون کانجه شرط دادم، چون شتها شبیه های دقلی یکسان تشکیل می انتظار از خودگذشتگی ایثارگرانه در آنها زیاد است. همیلتون در 1964 به این نکته پی برد و به زحمت بسیار این واقعیت غیر معمول را توضیح داد که ایوانت مشابه ساز هیچ گرایش خاصی نسبت به رفتاری ایسارگرانه ندارند. وقتی نوبت به کشف شتای سرباز رسید، چیزی بیش از آن نمی با نظریه همیلتون سازگار باشد. با این حال، دو مقاله اولیه که این کش در مطرح شد شطای سرباز و طوری در نظر گرفته بودند که انگار اشکالی برای نظریه همیلتون محسوب می شدند چون تکلات دولات نبودن تنز جالبی است وقتی موریان را در نظر میآوریم اغلب آنها را هم دردسری برای نظریه همیلتون دانستند تنز ادامه میآورد خود همیلتون کسی بود که در سال 1972 یکی از جالبترین نظریه ها را در مورد علت اجتماعی شدن آنها مطرح کرده بود که میتوان آن را قیاس هوشمندانه ای با فرضیه تکلا دولاد دانست. این نظریه درونزایی چرخه ای را که هفت سال بعد از انتشار مقاله اولیه همیلتون شکل گرفت اغلب به سه بارتس نسبت میدهند. خود همیلتون طبق معمول فراموش کرده بود که نظریه بارتس اول به فکر خودش رسیده بود و من مجبور شدم مقاله خودش رو جلو چشمش بگذارم تا باور کند. صرف نظر از مسئله پیشکام بودن این نظریه به قدری جالب است که من افسوس می چرا در چاپ اول کتاب از آن صحبت نکردم حالا این کوتاهی رو جبران میکنم گفتم این نظریه قیاس هوشمندانه ای است با فرضیه تقلاد دولادی منظورم این است که از نقطه نظر تکامل اجتماعی، ویژگی بارز جانوران تکلات دولاد این است که هر دو فرد ممکن است از نظر ژنی به خواهر برادرش نزدیک باشد تا به بچه هایش. این او را وامی دارد که در لانه پدری بماند و از خواهر برادرهایش مراقبت کند به جای اینکه برود و بچه های خودش را بزرگ کند. همیلتون به دلیلی برای اینکه چرا در موریانه ها هم ممکن است خواهر برادر بیش از والدین و فرزند از نظر ژنی به هم نزدیک باشند، اندیشیده بود. کلید مسئله درونزایی است. وقتی حیوانات با خواهر برادر خود جفتگیری می کنند، که تولید می شوند، از نظر جنی همشکلی بیشتری دارند. در یک نسل آزمایشگاهی موش های سفید، از نظر جنی تقریبا معادل دو به این دلیل که حاصل رشته ای طولانی از آمیزش خواهر برادرهایند، ژنوم آنها بسیار خالص است یا به زبان فنی تقریبا در هر یک از جفت های ژنی دو ژن یکسانند و همچنین یکسانند با ژنهایی که در همه دیگر افراد آن رگه در همان جایگاه قرار دارند اغلب در طبیعت یک رشته که ادامه دار از آمیزش با خیشان نزدیک را نمیبینیم اما یک استثنای چشمگیر وجود دارد موریانه ها یک لانه نوعی موریانه را یک زوج سلطنتی بنا نهادند شاه و ملکه که فقط با همدیگر میآمیزند تا وقتی یکی از آنها بمیرد آن وقت یکی از بچه هاشان جای آن نر یا ماده فوت شده را پر می کنند و با یکی از والدین خود جفتگیری می اگر هر دو از و زوج سلطنتی بمیرند، جایشان را یک زوج خواهر برادر می گیرد و همینطور آخر. یک پرگنه بالغ احتمالاً چندین شاه و ملکه از دست داده است و نتایج بعد از چند سال در واقع بسیار درونزایند مثل موشهای آزمایشگاهی هم که متوسط خلوص و متوسط به نسبت درون هر لانه موریان سال به سال بیشتر می شود و تولید مز کنند های سلطنتی پشت سر هم جای خود را به فرزندان یا خوهر برادرانشان می دهند اما این فقط گام نخست استدلال همیلتون است. بخش جالب آن بعد می آید محصول نهایی یک پرگنه حشرات اجتماعی موجودات بالدار جدیدی که از پرگنه به پرواز در می آید. جوفگیری می کنند و پرگنه تازهی می سازند. وقتی این شاه و ملکه های جدی جفت می این احتمال هست که این جوفگیری خیشامیزی نباشد در واقع به نظر می رسد این مراسم طوری همزمان طراحی می شود که لانه های مختلف موریانه های یک منطقه همه در یک روز تولید مثل کننده های بالدار تولید کنند شاید به این خاطر که امکان برونزاداوری فراهم باشد به این درتیب نتیجه ژنی آمیزش شاه جوان پرگنه A و ملکه جوان پرگنه B را ملاحظه می کنیم. هر دو آنها خودشان حاصل درون آمیزی های بسیارند. هر دو معادل موشهای درون زاداوری شده ی اما از آنجا که محصول برنامه های متفاوت و جداگانه زادآوری با خیشانند، از نظر ژنی با هم فرق دارند. مانند موشهای های شده متعلق به دو رگه متفاوت آزمایشگاهی آزمایشگاهیم. وقتی اینها با هم میآمیزند بچه هاشان به شدت ناخالص ولی همانند خواهند بود. ناخالصند، یعنی در بسیاری از جایگاه های ژنی دو ژنشان با هم فرق دارد. همانندند یعنی هر یک از بچه ها درست مثل بقیه ناخالص است. آنها از نظر ژنی تقریبا با خواهر برادرهایشان یکسانند اما در این حال بسیار ناخالصند حالا در زمان به جلو میپریم آن پرگنه جدید و بنیانگزاران سلطنتیش بزرگ شده‌اند پرگنه پر از از تعداد زیادی موریانه کوچک ناخالص همانند فکر کنید وقتی یکی یا هر دو عضو آن زوج سلطنتی بمیرد چه اتفاق میافتد آن چرخه قدیمی خیش آمیزی دوباره با پیامدهای چشمگیرش راه می‌افتد. اولین نسل حاصل از آمیزش با نزدیکان بسیار پرتنوعتر از نسل قبل است. مهم نیست که آمیزش برادر و خواهر را در نظر بگیریم. آمیزش پدر دختر یا مادر پسر را اصل قضیه. در مورد همه یکی است. اما این است که آمیزش خواهر برادر را در نظر آوریم. اگر خواهر برادر ناخالص همانند باشند هاشان در همی از ترکیب‌های ژنی مختلف خواهد بود این بر اساس ژنتیک اولیه مندلیست و اصولا در مورد همه حیوانات گیاهان نه فقط چون چنین است اگر شما افراد ناخالص همانند را با هم یا با یکی از ناخالص‌های نسل والدینشان آمیزش دهید از نظر ژنی واویلا می شود دلیلش تا در هر کتاب درسی ابتدایی جنتیک می توانید پیدا کنید و من نمی نمیدهم از دیدگاه فعلی ما نتیجه این است که در این مرحله از توسعه پرگنی موریانه هر فرد نوعی از نظر ژنی به خواهر یا برادر خود نزدیکتر است تا به بچه های احتمالیش و که در نازک بالان تقلاد دولاد دیدیم این می میتواند شرط اولیه تکامل طبقه کارگری باشد که از روی ایسار سترون است اما حتی در اونجا که برای بیشتر نزدیک بودن افراد به خواهر و برادر خود تا به بچه دلیل خاصی در دست نیست باز اغلب دلیلی وجود دارد برای اینکه نزدیکی نسبت افراد به خواهر و برادرشان به اندازه بچه باشد تنها شرط لازم برای وجود چنین حالتی درجاتی از تک همسری است تا حدی از نقطه نظر همیلتون این نقطه عجیب است که گناه دیگر وجود ندارند که در آنها کارگران سترون از خواهر و برادر خود مراقبت کنند. ما اکنون هرچه بیشتر پی میبریم به این که معمول نوعی روایت کمرنگ شده از پدیده کارگران سترونند و کمککار لانه نام دارند. در بسیاری از گونههای پرنده و پستاندار، جوانهای بالغ قبل از اینکه جدا شوند و برای خود خانواده تشکیل دهند یکی دو فصل با والدین خود میمانند و در بزرگ کردن خواهر برادرهای کوچک خود به والدین کمک میکنند نسخههایی از ژن انجام این کار به بدن آن خواهرها و برادرها انتقال مییابد با فرض اینکه آن افراد بهرهور خواهر برادران تنیاند نه ناتنی از نظر ژنی هر مقدار قضایی که صرف نگهداری یک خواهر یا برادر شود درست همان قدر سرمایه را برمیگرداند درست مثل اینکه برای بچه گذاری شده باشد البته این در صورتی است که همه شرایط دیگر یکسان باشد اگر بخواهیم توضیح دهیم چرا در بعضی گونه ها این کمک کار لانه وجود دارد و در بعضی ندارد باید به غیر یکسان بودن شرایط توجه کنیم برای مثال پرندی را در نظر بگیرید که در تنه خالی درخت لانه میسازد. سازد. چنین درخت هایی با ارزشند؟ چون فقط تعداد محدودی از آنها وجود دارد. اگر شما جوان بالغی هستید که هنوز پدر و مادرتان در قید حیات هم احتمالاً آنها صاحب یکی از آن درخت های تو خالی هم. یا حتماً باید تا این اواخر صاحبی یکی از آنها می در غیر این صورت شما وجود نمی داشتید. بنابراین احتمالا شما در تنهٔ درختی زندگی میکنید که کاروبارش دایر است و نوزادهایی که در درانند برادر خواهرهای تنی شمایند و از نظر ژنی آنقدر به شما نزدیکند که های آینده خودتان اگر شما بگذارید و بروید احتمال اینکه درختی برای خودتان پیدا کنید کم است حتی اگر موفق شوید بچههایی که بار میآورید از نظر ژنی به شما نزدیکتر از خواهر یا برادرهای خودتان نخواهند بود اگر این مقدار معین از تلاش را در تنهی درخت پدر سرمایه گذاری کنید، به از این است که همان مقدار را صرف جایی برای خودتان بکنید. بنابراین در این شرایط احتمالاً مراقبت از خواهربرادر یا کمک کار لانه بودن به است. با وجود اینها درست است که بعضی افراد یا همه افراد بعضی اوقات باید بگردند. و دنبال طنه درختی یا چیزی معادل آن در گونه خود باشند. اگر از اصطلاح بچه آوردن بزرگ کردن فصل هفت استفاده کنیم یک نفر باید کار زایدن را انجام دهد در غیر این صورت بچه وجود نخواهد داشت و کسی از آن مراقبت کند. البته این نکته مورد نظر نیست که در غیر آن صورت آن گونه منقرض می شود بلکه در هر جمعیتی که ژن مراقبت م در آن زیاد باشد ژن بچه آوری امتیازاتی خواهد داشت. در حشرات اجتماعی ملکه و نرها نقش زایندگی را عهده دارند. آنها کسانی هستند که لانه پدری را ترک می کنند و در پی یافتن تنه درختی برای خود راهی می شوند. و به این دلیل از که حتی در مورچه که کارگران بدون بالند آنها بالدار هستند. این طبقه تولید مثل کننده تمام عمر خود را به این کار اختصاص می دهند. پرنده و پستانداری که کمک کار لانه هند چیز دیگری چیز هر کدام بخشی از عمر خود را معمولاً اولین فصل بلوغ، به عنوان کارگر صرف کمک به بزرگ کردن خواهر و برادرهای کوچکی خود می کنند ولی در بقیه عمر به این فکرم که خود تولید مست کننده باشند مشکورهای بیمو که در فصل قبل توصیف شدند چگونند؟ آنها نمونه بارز کاروبار دایر یا اصل درخت درون توهی هند. گرچه در کاروبار آنها از درخت درانتوی خبری نیست. در مورد آنها قضیه به توضیع تکه تکه و نامنظم زخیره های مواد غذایی در زیر زمین علفظارهای بیدرخت مربوط می شود. قضای اصلی آنها شاخه های زیر زمینی است. شاخه که ممکن است بسیار گسترده و تا اعماق نفوذ کرده باشند. تنها یک شاخه زیرزمینی این چنینی میتواند جوابگوی هزار موش کور شود و وقتی پیدا شد میتواند غذای چند ماه یا حتی چند سال پرگنده را تأمین کند اما مشکل یافتن آن شاخه است زیرا به صورت نامنظم و جست گریخته در سراسر الفزار پخش شده اند برای موشهای کور یافتن منبع قضایی کار است و وقتی آن را پیدا کنند برایشان بسیار با ارزش است. رابرت برت به این نتیجه رسید که موشکور تنها برای یافتن یک شاخه زیرزمینی باید آنقدر کار کند که دندانهایش از جویدن ساییده شود. یک پرگنه بزرگ جمعی با تونلهای کلومتریش که در زیر زمین کنده شده معدن قنی شاخه زیرزمینی است. برای هر فرد از نظر اقتصادی به صرف این است که عضو اتحادیه معدنشیان باشد. بنابراین یک تشکیلات بزرگ زیرزمینی که با همکاری تعداد زیادی کارگر اداره میشود یک کارگاه پر رونق است، درست مثل درخت درونتوهی فرضی ما با این تفاوت که آن پر است. با فرض اینکه شما در یک راهروی جمعی پیچ در پیچ زندگی می‌کنید و با این فرض که مادرتان هنوز برایتان برادر و خواهر تنی درست می‌کند، دیگر انگیزه برای گذاشتن و رفتن و خانواده مستقل تشکیل دادن ندارید. حتی اگر بعضی از خواهر برادرها ناتنی باشند. باز بحث کار و بار دایره می‌تواند جوانان بالغ را در خانه پدری ماندگار کند. توضیح صفحه 177 عبارت تقریبا به نسبتی رسیدن که به طور قانع کننده این نزدیک بود به یک سه همان نسبت ماده به ندی که این نظریه پیش بینی کرده بود. توضیح ریشارد و پول شرمن در ای از روش کار و نتیجه تریورس و هیر انتقاد کردند. آنها قبول داشتند که این نسبت که در آن تعداد ماده بیشتر است در میان حشرات اجتماعی برقرار است اما بحثشان این بود که نسبت س یک خیلی شست رفته و قالهوی است. آنها ترجیح میدادند با توضیح دیگری بیشتر بودن نسبت ماده‌ها را بیان کنند. توضیح که مانند توضیح تریورز و هیر ابتدا در پسات همیلتون مطرح شده بود. از نظر من منطق الکساندر شرمن کاملا مضیروفانه است اما یک احساس درونی به من میگوید کاری به شیوایی اثر تریورز و هیر نمیتواند کاملا نادرست باشد. آلنگرافن توجه را به مسئله نگرم کنندی دیگری در مورد نسبت جنسی نازخ بالان در ویرایش نخست این کتاب جلب کرد. من آن نکته را در رخ نمون گسترش صفحه 75-76 شرط دادم. در زیر خلاصه از آن می آید. آن کارگر بلغوفه هنوز بین بزرگ کردن خوهر برادرها یا پرورش دادن بچه های خودش در هر جمعیت و با هر نسبت جنسی فرق نمیگذارد بنابراین فرض کنید در آن جمعیت نسبت ماده ها بیشتر باشد حتی همان نسبت سه به یک باشد که تریورز و هیر پیشبینی کردند. از آنجا که نسبتی که آن کارگر با خواهرانش دارد نزدیکتر از نسبتی است که با برادران یا بچه های خودش از هر جنس که باشد دارد شاید پرورش خوهر برادر را به بچه ترجیح دهد البته وقتی نسبت جنسی توری است در آن آیه وقتی خواهر برادرها را ترجیح می دهد از این طریق به خواهرهای با ارزش به اضافه چند تا برادر کم ارزش نمی رسد. اما در این نسل‌ها ارزش بالای زادآوری نرها در جمعیت با توجه به کمیابیشان ندیده گرفته شده است آن کارگر ممکن است با هیچ یک از برادرهایش نسبت نزدیکی نداشته باشد اما اگر در کل در جمعیت تعداد نرها کم باشد این احتمال هست که هر ایک از آن برادرها نیای نستای آینده باشند. توضیح در مورد عبارت سفیه در صورتی که یک جمعیت به وضعیتی دچار شود که آن را در جهت نابودی براند نابود می شود که بسیار هم بد است. توضیح فیلسوف برجسته جی مکی فقید از این واقعیت که جمعیت متقلب و تلافیجوهای من میتوانند همزمان پایدار باشند نتیجه جالبی برداشت کرده است گفتیم بسیار هم بد است که یک جمعیت به ESSی برسد که به سمت انقراض ببرد مکه این نکته را اضافه می کند که بعضی از انواع ESS بیشتر از انواع دیگر ممکن است جمعیت را به سمت نابودی برانند در این مثال خاص متقلب و تلاویجو هر دو از نظر تکاملی پایدارند جمعیت ممکن است در حالت تعادل متقلبی یا تعادل تلافی جویی قرار گیرد. نظر مکه این است که جمعیت هایی که در تعادل تقلبی ثبات میابند احتمال اینکه پس از آن منقرض شوند بیشتر است بنابراین باید نوعی انتخاب سطح بالاتر به نفع ایسارگری دو جانبه در ایسس ها وجود داشته باشد این را میتوان به شکل بحثی در جانبداری از نوعی انتخاب گروه بحث داد که برخلاف بیشتر نظریه های انتخاب گروه کارآمد باشد من آن را در مقاله در دفاع از جن خودخواه مطرح کرده هم.